به نام خدا. قصه ها و افسانه های مردم ایرلند به روایت آیلین آفولین و ترجمه محمد گزرآبادی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد بوستانی گوینده آرزو انصاری پسر زن بیوه و جادوگر در زمانهای بسیار دور زنی زندگی میکرد که از دار دنیا فقط یه پسر داشت اسم اون پسر مانوس بود یه روز مانوس به مادرش گفت مادر بزار من به دنبال بخت و اقبال خودم برم با اینجا نشستن هیچی درست نمیشه مادرش هم این اجازه رو به اون داد مانوس به راه افتاد و رفت و رفت تا به یه چهار را رسید در اونجا چه کسی رو دید بله جادوگر رو دید اونا به همدیگه سلام کردند و با هم آشنا شدن. جادوگر گفت: دوست داری با من شطرنج بازی کنی مانوس جواب داد با اینکه در شطرنج مهارتی ندارم اما با تو بازی میکنم اونا شروع به بازی کردن و مانوس بازی رو برد جادوگر گفت: «من باختم از من چی میخوای؟ مانوس گفت؟ یه عمارت بزرگ و زیبا که نظیرش رو تا حالا هیچ کی ندیده به جای این اتاق قدیمی و دود گرفته که خونه منه اونا یه بار دیگه بازی کردند و باز هم مانوس برد جادوگر گفت این بار چی میخوای؟ مانوس گفت من یه آسیاب بزرگ میخوام که بتونم هر نوع گندمی رو آرد کنم اونم با جریان آب بسیار ملایم و دوست دارم که این آسیاب درست پشت خونم باشه وقتی مانوس به خونه رفت، چشمش به قصری بزرگ و زیبا افتاد که آسیابی بزرگ پشت اون بود. یه روز دیگه مانوس دوباره به همون چهار رفت و جادوگر رو دید. جادوگر گفت: میبینم که دوباره به اینجا اومدی. مانوس گفت: بله، اومدم. جادوگر گفت: ممکن امروز هم بازی کنیم؟ مانوس گفت: با کمال میل. اونا دوباره بازی کردند و این بار هم مانوس برنده شد. جادوگر گفت: حالا چی میخوای؟ مانوس گفت: زیباترین زنی رو که در تمام دنیا وجود داره، جادوگر گفت من اون زن رو برات پیدا می کنم چون در غیر این صورت هرگز راضی نخواهی شد و مانوس رو به اتاقی برد که دوازده زن اونجا منتظر بودن، موهای اونا قرمز بود به قرمزی روباه و صورتاشون سفید بود به سفیدی قو. جادوگر گفت مانوس انتخاب کن مانوس کمی به اونا نگاه کرد و گفت هیچ کدوم از اینا انتخاب من نیست. جادوگر مانوس رو به اتاق دیگه ای برد که دوازده زن با موهای تیره اونجا منتظر بودن. مانوس هیچیک از اونا هم قبول نکرد. جادوگر گفت شما خیلی مشکل پسندی و دست اون رو گرفت و به اتاق دیگه ای برد. اونجا دوازده پیرزن مجرد زشت با موهای خاکستری منتظر نشسته بودن. جادوگر گفت انتخاب بودن. مانوس اینا ارزونی خودت، هیچ مردی حتی اگه بدونه که تا آخر عمرش هم همسری نخواهد داشت، حاضر نمیشه با اینا ازدواج کنه. جادوگر گفت، دیگه از قدرت من خارجه و چیز دیگه ای ندارم که تو رو راضی کنه. بعد از اونجا بیرون رفتند و چه کسی داشت از بالای جاده می اومد؟ یه زن، یه زن جوون و زیبا، با کوزه پر از آب روی شونش، مانوس به بالای جاده نگاه کرد و چشماشو کمی تنگ کرد و گفت زنی که از بالای جاده به طرف ما میاد همون زنیه که من میخوام چشمای جادوگر یکم درست شد و بعد از کمی فکر کردن گفت از دستوراتت نمیتونم سرپیچی کنم دعاهای من بدرقه راهت مانوس با جادوگر و دخترش به خونه رفتن بله دختری که کوزه پر از آب روشونش بود دختر جادوگر بود آن دو پس از مدت بسیار کوتاهی ازدواج کردند. دختر جادوگر تمام سحر و جادوهای پدرش رو یاد گرفته بود و میدونست. روز بعد از ازدواج مانوس به همون چهارراهی که وسط جاده قرار داشت رفت. جادوگر منتظرش بود. به اون گفت: "معامله‌ای که با هم کردیم چطور بود؟" مانوس جواب داد: "فکر کنم معامله بسیار خوبی بود." جادوگر گفت: "مانوس، دوست داری یه بار دیگه بازی کنیم؟ زیاد وقتمون نمیگیره. مانوس گفت: باشه، بازی میکنیم. اونو بازی کردند و این بار جادوگر برد. مانوس گفت: جریمه من چیه و از من چی میخوای. جادوگر گفت: برادر من در شرق زندگی میکنه به مشرق زمین برو و اونو بکش و سرش رو برام بیار. در ضمن تفنگ دلول و شمشیر درخشان اونو هم باید برام بیاری. مانوس سوال کرد: ممکنه تا فردا به من فرصت بدی؟ و جادوگر جواب داد: البته چرا که نه؟ مانوس به خونه برگشت، همسرش پرسید خبره تازه چی داری؟ مانوس جواب داد من باید به جای دوری برم. کجا باید بری؟ من باید به سرزمین شرق برم و سر برادر جادوگر توفنگ دلول و شمشیر درخشانش رو براش بیارم. همسرش گفت در این صورت فردا صبح که از خواب بیدار شدی به بام خانه برو، پشت شیروانی افساری آویزونه، اونو بردار و پیش جادوگر برو و بگو که نمیتونی به این سفر دور و دراز بری مگر اینکه اسبی به تو بده. اون قبول میکنه و تو رو با خودش به یه صحرایی میبره که پر از بهترین اسبایی که تا حالا دیدی و میخواد که یکی رو انتخاب کنی. افسار رو بیرون بیار و اونو تکون بده. هیچ اسبی رو انتخاب نکن مگر اسبی که خودش بیاد و سرش رو تو افسار کنه. مانوس پیش جادوگر رفت. جادوگر اونو به مزرعه‌ای برد پر از اسب‌های قبراغ و سرهال مانوس افسار رو در آورد و اونو تکون داد هیچ اسبی نزدیک نیومد مانوس اونقدر افسار رو به طرف اصبه ها گرفت و تکون داد که دستاش خسته و بیرمغ شد خلاصه اینکه هیچ اسبی حتی نگاه هم به افسار نانداخت جادوگر مانوس رو با خودش به چمنزار ای برد که اصبه های بیشتری داشت اصبه هایی که سرهال‌تر و زیباتر از اسب‌های مزرعه بودند مانوس افسار رو تکون داد اما هیچ اسبی به طرفش نیومد که نیومد جادوگر اونو به جای دیگه ای برد صحرایی عریض با چمنزاری وسیع که پر بود از عصبهای پیر و فرتوتی که شب و روز به چریدن مشغول بودند. مانوس ناامیدانه و بیرقبت افسار رو تکون داد پس از مدت کوتاهی چه چیزی به طرف اون اومد و سرش رو داخل افسار کرد؟ بله یه اسب اما بیحال بدترین اسبی که اونجا مشغول چریدن بود مانوس گفت اوه oh, لعنت به این شانس فکر میکنم که اگه عصبی بیرمقتر و بیریختر از تو اینجا بود حتما اون میومد و سرش رو تو این افسار میکرد و ناچارن سوار اسب شد به محض اینکه سوار سوارش شد اسب شیهه ای کشید روی دو پا بلند شد و بدون درنگ تاخت اونها باید به سرعت میرفتند تا به بادهای ماه مارس برخورد نکنند از 21 تپه بزرگ و 12 در تنگ در دل کوهستان با پرش های بلند و جستخیز های فراوان گذشتند نه سرعتشون رو کم کردن و نه لحظه ای استادن. همچنان تاختند و تاختند تا به سرزمین شرق و قلم رو به جادوگر رسیدند دیوار اونجا اونقدر بلند و مرتفع بود که مانوس رو به وحشت انداخت به محض اینکه اسب میخواست از روی دیوار به پره منوس افسارش رو محکم کشید و اونو از رفتن باز داشت اسب به اون گفت اگه یه بار دیگه این کارو کردی من برمیگردم و تو رو با خودت تنها میذارم و با پرشی بلند به نرمی یک پرنده از روی دیوار پرید و طوری در محوت پایین اومد که اگه اونجا پر از تخم مرغ بود سمهاش هیچ کدوم از اونها رو نمیشکست به محض فرود اومدن راه استبر رو در پیش گرفت و به اونجا رفت سپس رو به مانوس کرد و گفت برام مقداری گندم الک شده تازه بیار مانوس هم براش مقدار زیادی گندم تازه علک شده برد. بعد به طرف دروازه قصر جادوگر رفت و به در ضربه زد. پس از مدت کوتاهی جادوگر خودش در رو باز کرد. مانوس از دیدن جادوگر ترسی به دل راه نداد چون میدونست که تا اون زمان هیچکی در قلم رو به جادوگر و توسط اون کشته نشده. جادوگر به مانوس نگاه کرد و از اینکه هیچ اثری از ترس در چهرهش ندید خیلی تعجب کرد و پرسید: چه کسی تو رو به اینجا فرستاده؟ اصلا تو کی هستی؟ مانوس پاسخ داد اینا چیزایی است که من نمیتونم به شما بگم. جادوگر گفت: بسیار خوب. حالا به تو میگم که چه کار باید بکنیم. ما سه شب با هم صحبت میکنیم و سه داستان میگیم و سه تردستی برای هم انجام میدیم. اگه من برنده شدم سرت رو از تنت جدا میکنم. مانوس گفت: من این معامله رو قبول دارم. چه وقت شروع کنیم؟ جادوگر گفت: از همین حالا. تو برو و خودتو پنهان کن. اگه من تونستم تو رو پیدا کنم اون وقت زندگی تو میگیرم و سرت رو از سرت جدا میکنم مانوس پیش اسب رفت و گفت منو و جادوگر قراره با هم مسابقه بدیم و اون شروع کننده است قرار بر اینه که من مخفی بشم و اگه اون منو پیدا کنه سرم رو به باد خواهم داد اسب گفت اگه هر چی که میگم گوش کنی اون نمیتونه آسیبی به تو بزنه مانوس گفت به من بگو هر چی که بگی انجام میدم اسب گفت من دندون درد دارم و تو باید دندون خراب منو بکشی مانوس یه لحظه گیج شد اوه تو اسب بیریخت و زشت از من میخوای که دندون تو بکشم نه هرگز من حتی برای مادر خودم همین کارو نمیکنم. اگه این کارو نکنی مطمئنم پشیمون میشی مانوسی هم فکر کرد و گفت باشه بهتره به نصیحتات گوش بدم و دستش رو در دهان اسب برد تا دندون خرابش رو بیرون بیاره که ناگهان اسب اونو به دهن کشید اما قورتش نداد و اونو پشت دندونای آخرش جا داد. جادوگر همه جا رو دنبال مانوس گشت، هفت قلم رو به پادشاهی و تمام سرزمیناشو، اما اثری از اون پیدا نکرد که نکرد. شب شد و وقت برای گشتن تموم شد. در این موقع اسب مانوسو از دهانش بیرون انداخت. اون سالم سر و با تر از همیشه بود. اسب به مانوس گفت: برو کمی جادوگر رو مسخره کن و به اون بخند و بگو که تمام این مدت در استبل بوده ای مانوس پیش جادوگر رفت و سر به سرش گذاشت جادوگر گفت بگو ببینم کجا بودی؟ مانوس پاسخ داد در حقیقت چندین و چند بار از کنارم رد شدی اما منو ندیدی جادوگر گفت من همه جا رو گشتم این محاله خب بگو ببینم کجا بودی؟ مانوس پاسخ داد من تمام وقت و تو استبل بودم جادوگر گفت او همه جا رو گشتم به جز اونجا رو صبح روز بعد مانوس در حالی که یک دسته بزرگ جای پوسکنده زیر بغل گرفته بود به طرف اسب رفت و همچنان که قضا رو براش میزاشت به او گفت من باید دوباره مخفی بشم اسب پرسید این بار کجا مخفی میشی؟ مانوس جواب داد نمیدونم اما فکر میکنم باید جایی تو همین دنیا باشه اسب گفت انتهای دوم من یک موی خاکستری وجود داره اون مو رو بگیر و محکم بکش تا کنده بشه اوه تو اسب کوتوره زشت از من میخواای که چكار کنم نه من برای مادر خودم هم این کارو نمی اسب گفت اگه این کارو انجام ندی پشیمون میشی مانوس موی خاکستری رو گرفت و کند و تو همون لحظه اسب یه دست مو از مانوس درست کرد جادوگر شروع به گشتن کرد هفت قلم رو به پادشاهی رو وجب به وجب گشت بالو رو پایینو، اما باز هم مانوس رو نیافت روز به پایان رسید و اون به قصرش برگشت اسب مانوس رو از میان موهای دومش بیرون انداخت مانوس صحی و سالم بود سالم تر از همیشه او به قصر رفت و از اینکه جادوگر نتونسته بود پیداش کنه مسخرهش کرد جادوگر پرسید از صبح تا به حال کجا بودی مانوس گفت من پشت اون علفا بودم اون گوشه حیات تعجب میکنم چطور منو ندیدی فکر میکنم چشمات داره کور میشه جادوگر گفت من همه جا رو گشتم جز اونجا رو صبح روز بعد یه دسته بزرگ گندم آورد و اونو اسب گذاشت اسب گفت یک برآمدگی در گلون پیدا شده و نمیتونم غذا بخورم تو باید دستاتو مشت کنی و با ضربه اون برآمدگی رو از بین ببری مانوس گفت تو اسب بیریخت نه من که دکتر نیستم اسب کوچک گفت اگه این کارو نکنی سخت پشیمون میشی مانوس دستهاشو مشت کرد و به عقب برد و همچنان که اونا رو به طرف گلوی اسب آورد، ناگهان عصب دهنش رو کاملا باز کرد و اونو قورت داد. جادوگر همه جا رو در به در دنبالش گشت. بالا، پایین، اینجا، اونجا، همه جا، اما اثری از مانوس نبود. جادوگر با خودش گفت اگه این بار هم اونو پیدا نکنم و نفهمم که آن کرم تیر روز کجا پنهان شده حتما شرط رو خواهم باخت. او فکر کرد که شاید اون اسب کوچیک جادو می کنه و مانوس رو پنهان می کنه پس به طرف اسب رفت و تک تک موهای بدنش رو گشت، اما معیوسانه برگشت و تا آخر روز مانوس پیدا نشد که نشد. وقتی روز به پایان رسید، اسب مانوس رو از شکم خودش بیرون انداخت. مانوس این بار هم سرحالتر از همیشه بود. اسب گفت: "حالا برو حسابی به اون بخند و بگو که وقتی به دنبال تو میگشته آیا تعدادی پسر بچه رو در حال بازی ندیده و اگه دیده آیا پسر بچهی ای که بین اونها با فریاد اون رو صدا میزد و به مبارزه میطلبیده ندیده بعد به اون بگو که اون پسر بچه تو بودی مانوس پیش جادوگر رفت و اون رو دست انداخت و مسخره کرد این بار بیشتر از دفعاتی پیش جادوگر رو مسخره کرد و گفت آقای جادوگر امروز در کدوم قسمت دنیا به دنبال من میگشتی و اصلا کجا بودی؟ جادوگر گفت بگو ببینم خودت کجا بودی که من نتونستم تو رو پیدا کنم ها؟ مانوس گفت میگم که کجا بودم. آیا تو هنگام جستجو بچه هایی رو ندیدی که داشتن بازی میکردن؟ جادوگر گفت چرا؟ اتفاقاً اونا رو دیدم. مانوس دوباره گفت آیا کسی که از بین اونا تو رو صدا میزد ندیدی؟ جادوگر با تعجب گفت چرا؟ فکر کنم که اونو دیدم. مانوس با خنده گفت خوبه. باید بدونی که اون پسر بچه من بودم. فردای اون روز جادوگر تصمیم گرفت که جادوی خودش رو امتحان کنه. مانوس باز هم یک دسته بزرگ گندم طلایی پوستکنده برای اسب برد و با ناراحتی به اون گفت: اسب کوچیک، حالا من خیلی نگرانم. اسب گفت: اصلا نگران نباش، فقط به حرفهام گوش کن. بگو ببینم امروز باید چه کار کنی؟ مانوس گفت: جادوگر رفته و ناپدید شده و من نمیدونم دونم زنده است یا مرده و اصلا نمیدونم دونم کجاست و کجا دنبالش بگردم. اگه تا قبل از تاریکی نتونم پیداش کنم حتما سرم را از ترم جدا می اسب گفت حالا به من گوش کن. برو پیش دختر خدمتکاری که تو آشپزخونه است و ببین چطور می تونی حلقه ای را که در انگشت داره از اون بگیری. چون جادوگر همون حلقه است. مانوس پیش دختر رفت و به اون گفت چه انگشتر قشنگی داری ممکنه اونو به من بدی خدمتکار گفت نه امکان نداره اونو از جای دور برام آوردن در همین لحظه مانوس ناگهان دست دختر رو محکم گرفت و حلقه رو از انگشتش بیرون آورد و داشت اونو داخل آتیش مینداخت که جادوگر فریاد زد این کارو نکن این من هستم و مانوس اون روز بازی رو برد صبح روز بعد مانوس با دسته گندم نزد اسب رفت و به اون گفت امروز یکی از روزهای بد زندگیمه جادوگر رفته و من نمی دوم کجای این دنیا دنبالش بگردم. اسب گفت: طولی نمیکشه کشه که اونو پیدا می کنی بنابراین چرا اینقدر ناراحتی حالا به حرفهام گوش کن. برو پیش دختر خدمتکارو کمی با او درد دل کن. پس از اندکی گپ زدم بگو میخوای با اون کمی در باغ قدم بزنی وقتی که به باغ رفتی دنبال درخت سیبی بگرد که تنها یه سیب روی شاخشه. اون سیبو بکن. چون همون جادوگره بعد چاگوت رو از جیب در بیار و سیب رو از وسط دونیم کن یه نیمه رو برای خودت و نیمه دیگرش رو به دختر بده مانوس نزد دختر خدمتکار رفت و از اینجا و اونجا صحبت کرد و بلاخره از اون خواست که کمی با هم در با قدم بزنن دختر قبول کرد اونا در حال قدم زدن بودن که مانوس درختی رو که تنها یه سیب داشت دید و با خودش گفت خودشه بعد پرید و اون سیبو چید. و فوراً چاقویی از جیبش در آورد تا سیب رو دو کنه یکی برای خودش و دیگری برای دختر که ناگهان صدایی اومد این کارو نکن این منم و مانوس اون روز هم بازی رو برد بعد به جادوگر گفت این آخرین فرصت توست و ادامه داد تو نتونستی هیچ وقت منو پیدا کنی اگه من این دفعه هم تو رو پیدا کنم اون وقت سرت رو از تن جدا میکنم و به زندگیت خاتمه میدم دوباره صبح شد صبح روز سوم مانوس یک دست گندم تازه برای اسب برد و به اون گفت امروز بدترین روزمه اگه نتونم اسب حرف مانوس رو قطع کرد و گفت لازم نیست اینقدر بترسی. اگه به حرف اون گوش کنی همه چی درست میشه. مانوس گفت خب بگو ببینم چی میگی. اسب گفت یه بشکه پشت در بزرگ هست. همین حالا برو پیش دختر خدمتکار و از اون بخوا که اون بشکر رو نشونت بده. اون به تو نمیگه چون یه موش بزرگ زیر بشک است و اون موش همون جادوگره تو باید صندوقی رو که در انتهای اتاق پشت قصر هست پیدا کنی و شمشیر درخشان رو از درون اون بیرون بیاری به دختر بگو که اگه جای بشکه رو به تو نشون نده خودت اون قدر میگردی تا پیداش کنی مانوس پیش دختر رفت و از اون جای بشکه رو پرسید دختر جای بشکه رو نگفت مانوس گفت من میرم و خودم بشکه رو پیدا میکنم دختر به اون گفت اگه این کارو بکنی حتما پشیمون میشی مانوس یه راست به طرف اتاق پشت قصر رفت همون جایی که صندوق بزرگ بود و شمشیر درخشان تو اون قرار داشت شمشیر رو برداشت و به دنبال بشکه ای که پشت دروازه بزرگ بود گشت تا بالاخره پیداش کرد و با یه حرکت سریع اونو برگردوند چه چیزی از زیر بوشک پا به فرار گذاشت بله یه موش بزرگ مانوس به دنبال موش دوید و شمشیرش رو بلند کرد تا اونو از وسط نصف کنه که ها بلند به گوشش اومد دست نگهدار این کارو نکن این منم مانوس گفت دیگه مهم نیست من بارها به تو فرصت دادم و حالا دیگه همه چی تموم میشه بعد شمشیرش رو بلند کرد و با یه ضربه سر جادوگر رو از بدنش جدا کرد سر بریده جادوگر به حرف اومد و گفت اگه من دوباره بتونم بدن خودم رو به دست بیارم دیگه حتی نصف مردم ایرلند هم نمیتونن جونمو از من بگیرن مانوس گفت این آرزویه که هرگز به اون نمیرسی چون من سر بریده تو رو میخوام و نمیذارم که دوباره زنده بشی سر بریده به این طرف و اون طرف میپرید و مانوس مجبور شد بار دیگه شمشیرش رو بکشه و ضربه دیگه به اون بزنه سپس اونو برداشت و زیر بغلش گذاشت و به راه افتاد زمان برای مانوس به خوبی میگذشت او با یک دسته گندم تمیز پیش اسب رفت اسب نظری بهش کرد و گفت این چیه مانوس گفت سر بریده جادوگر و ادامه داد من شمشیر درخشانم به دست آوردم اما یه چیز دیگه مونده اسب پرسید اون چیه مانوس جواب داد یه تفنگ دلول اسب گفت من میدونم کجاست مانوس با عجله پرسید بگو کجاست جاش دوره اسب جواب داد نه اتفاقا خیلی هم نزدیکه در واقع میتونم بگم که همینجاست برو اونجا داخل حیات پشت استاب و بین اون توده آهک رو یکم بکن بعد از این که کمی کندی یک کلنگ پیدا می کنی که دو سر داره کلنگ دو سر رو بردار و اون رو روی تخت سنگی که درست پشت در قرار داره بذار تخت سنگ به خودی خود بلند میشه تفنگ دلول درست زیر تخت سنگ و تو میتونی اونو برداری مانوس رفت و همین کارو کرد و منتظر موند تخت سنگ آرام بلند شد و مانوس تفنگ رو دید و اونو برداشت حالا مانوس تفنگ دلول شمشیر درخشان و سر جادوگر رو در اختیار داشت اسب گفت خب میبینم همه اون چیزایی رو که میخواستی به دست آوردی مانوس گفت بله و از تو متشکرم. اگه تو نبودی من خیلی وقت پیش مرده بودم و ادامه داد ما فردا صبح به طرف خونه حرکت میکنیم اسب گفت باشه من فردا صبح آمادم فردای اون روز مانوس صبح زود از خواب بیدار شد و مثل روزهای قبل با دست گندم پیش اسب رفت اسب وقتی گندما رو خورد به مانوس گفت زود باش سوار شد ما باید حرکت کنیم افزارم او ول نکن تا به سرزمین غرب برسیم. اونجا جادوگر دیگه هست که باید زود اونو پیدا کنیم مانوس که سر بریده جادوگر شمشیر درخشان و تفنگ دلول در دستش بود سوار اسب شد و اسب هم بدون لحظه توقف شروع به دویدن کرد اونا به قدری سری دویدن که بادهای تند ماه مارس رو پشت سر گذاشتن و از راه میان با سرعتی بین نظیر به قلم رو جادوگر اول رسیدن اسب گفت حالا پیش جادوگر برو وقتی جادوگر تو رو ببینه اول سعی میکنه شمشیر رو ازت بگیره و تو به خاطر زندگیت نباید شمشیر رو به اون بدی اگه شمشیر به دست جادوگر بیفته با اون سرت رو از تنت جدا میکنه و به زندگیت خاتمه میده. اون به تو حمله میکنه و سعی میکنه شمشیر و تفنگو ازت بگیره تو باید با یک ضربه ناگهانی سرش رو از تنش جدا کنی وگرنه اون تو رو میکشه مانوس گفت حتما این کارو میکنم و به طرف جادوگر رفت جادوگر که و دید خوشحال شد و به اون خوشامد گفت و ادامه داد خیلی خوشحالم که تو برگشتی آیا چیزایی که میخواستم و آوردی مانوس جواب داد بله و سر برادرش رو به طرفش پرت کرد و گفت این یکی از اون چیزاییه که میخواستی. جادوگر گفت: بسیار خوب، حالا شمشیر رو هم به من بده. و در این لحظه چشماش از خشم برق میزد. مانوس گفت: چه رفتار بدی داری؟ فکر نمیکنی که من بیشتر از تو سزاوار داشتن این شمشیرم؟ ضمن اینکه شمشیر رو من به دست آوردم نه تو. جادوگر گفت: مشکلی نیست، یا شمشیر رو به من بده یا اینکه سرت رو به باد میدی. مانوس گفت: اگه تو اینطور میخوای باشه. همونطور که سر برادرت رو بریدم سر تو رو هم از تنت جدا میکنم حالا مواظب خودت باش و قبل از اینکه جملش تموم بشه با یه ضربه ناگهانی سر جادوگر رو از تنش جدا کرد و به محض اینکه سر به زمین افتاد با ضربه دیگه اون رو به دونیم کرد جادوگر به زمین افتاد و در انبوهی از ماده ژلاتینی و لزج گم شد مانوس جادوگر رو کشت و شاید هم فکر می اون رو کشته بعد پیش اسب رفت اسب گفت عالی بود چطوری اونو کشتی؟ مانوس گفت من جادوگر رو با تمام سحر و جادوش کشتم و همه این موفقیت‌ها رو مدیون تو هستم اسب گفت تو کارت رو بسیار خوب انجام دادی تا زمانی که به من قضا میدی روزهای فقر و بدبختی رو نخواهی دید مانوس گفت تو اسب کوچک و باهوش لایق قضا دادن هستی حالا وقت اون رسیده که سری به همسر و مادرم بزنم بنابراین فردا صبح آماده باش فردا صبح مانوس بیرون رفت و با یه دسته گندم نزد اسب اومد. وقتی اسب قاصش خورد، مانوس سوار شد و با هم به طرف خونه به راه افتادن. اونا خیلی زود به قصر رسیدند و مانوس اسب رو به استبر برد و مقدار زیادی گندم جلوش گذاشت. بعد به طرف دروازه قصر رفت و در زد. همسرش در رو باز کرد و از دیدن و اون خیلی خوشحال شد و هزاران بار به اون خوشامد گفت. راستی سفر چطور بود؟ مانوس پاسخ داد: بسیار خوب. حالا دیگه تا زمانی که زنده هستم ثروتمند خواهم بود چون جادوگر رو کشتم همسرش گفت اگه جادوگر رو کشته باشی دیگه هیچ وقت روزهای فلاکت و بدبختی رو نخواهی دید زمان برای مانوس به خوبی میگذشت و زندگی براش لذت بخش بود اسب کوچک را داشت همه و گندم رو در به قصرش آرد میکرد و با همسر و مادرش در قصر زیباش به زندگی ادامه میداد مانوس دوروشکی خرید و هر سه نفرشون هر روز با دوروشک گردش میکردند. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه مردم اونو به خاطر اسم کتولو و پیرش مسخره کردن. یه روز مانوس به همسرش گفت مردم اسب منو مسخره میکنند و هر روز به من طعنه می‌زنن و من تصمیم دارم که اونو بفروشم حتی به قیمت یک نوشیدنی. همسرش گفت این کارو نکن. اگه اونو بفروشی بقیه عمرت رو تو بدبختی و ذلت به سر آن دو برادر جادوگر دوباره زنده میشن و تمام دار و ندار تو رو میگیرن مانوس گفت من اهمیتی نمیدم و اسب رو برداشت و به بازار برد اما هیچ خریداری پیدا نشد هوا داشت تاریک میشد و بازار هم رفته رفته میخواست تعطیل بشه مانوس با اسب و از بازار خارج میشد که مرد کوچک اندامی نزدیکش اومد و گفت برای این اسب فرد تو, تو کتوله چه قیمتی گذاشتی مانوس گفت قیمت بالایی نذاشتم فقط به اندازه قیمت دو نوشیدنی. پیرمرد گفت اگه شوخی نمی کنی من اونو میخرم. مانوس گفت: هیچ شوخی در کار نیست به همون اندازه پول بده و اسب و بردار. پیرمرد اسب و خرید و رفت، مانوس دوباره به بازار برگشت و به اندازه پولی که گرفته بود نوشیدنی نوشید. بعد به خانه رفت و زود خوابید. صبح روز بعد وقتی که از خواب بیدار شد نزدیک بود شکه بشه. چشمش و مالید و دوباره به دقت نگاه کرد و دید قسمتی از قصرش ناپدید شده. در واقع قسمت بزرگی از قصر به کلی از بین رفته بود. درشکش نبود. آسیاب انگار که هیچ وقت اونجا نبود. حتی همسرش هم نبود. دیگه براش هیچی باقی نمونده بود. جز همون کلبه دود گرفته و قدیمی و مادرش که گوشه اتاق زیر دودکش نشسته بود. درست مثل قدیم. مانوس به خودش گفت: دیگه از این بدتر نمیشه. بعد با صدای بلند گفت من دیگه اینجا نمیمونم و رو به مادرش کرد و گفت من دوباره میرم مثل اون روزی که رفتم و با جادوگر بازی کردم و پیروز شدم مادرش حرفش رو قطع کرد و گفت اما ای کاش نمیرفتی حالا چی داری هیچی بهتر تو خونه بمونی و حواستو بیشتر جمع کنی مانوس گفت مادر من به چیزهای کم ارزش اهمیتی نمیدم و میرم اون رفت و مادر پیرش رو تو همون کلبه دود گرفته تنها گذاشت مانوس لحظه این و همچنان رفت و رفت تا اینکه هوا کم کم رو به تاریکی گذاشت. و در اون لحظه چه چیزی دید؟ یک روباه، یک سمور و یک شاهین که با هم دعوا میکردن. یک هم فکر کرد و با خودش گفت بهتری کاری کنم که دعوای اینها خاتمه پیدا کنه. سپس یک هم گشت و پیر پیر ای پیدا کرد و فوری اون را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد و هر قسمت رو به یکی از اونا داد. شاهین گفت، اگه به کمک احتیاج داشتی فقط صدا کن شاهین سخره بادهای سرد روباه گفت هر وقت به روباهی چالاک و چابک احتیاج داشتی فقط صدا کن روباه تپههای پرگل سمور هم گفت اگه کمک خواستی منو صدا کن مانوس از اونا خدافزی کرد و به راهش ادامه داد همچنان که می یه نور دید به طرف اون نور رفت و به خونهی رسید و شب همونجا خوابید. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شد و از مرد ساحب خونه پرسید آیا در این نزدیکی ها خونه دیگه ای هم وجود داره؟ میزبان گفت در چهار مایلی اینجا جادوگری توی قصر زندگی میکنه هیچ کسی جرعت نداره به اون محبته بره مانوس گفت من اهمیتی نمیدم میرم تا اونو ببینم اون رفت و رفت تا به قصر جادوگر رسید جادوگر خونش نبود اون با برادرش به سرزمین شرق رفته بودن. مانوس به داخل قصر رفت و به دختر خدمتکار سلام کرد و گفت ممکنه به من کمی غذا بدی دختر گفت از این کار میترسم اگه جادوگر بفهمه که تو اینجایی تو رو میکشه و به زندگی من هم خاتمه میده مانوس گفت من جای دیگه ای ندارم امشب به من پناه بده و بگذار اینجا بمونم به هر حال مرگ یک بار به سراغ آدم میاد دختر گفت نمیدونم کجا تو رو مخفی کنم و بعد از اینکه یکم فکر کرد گفت مگه اینکه داخل آن خمره ای که پشت استبل هست بری؟ در این صورت جادوگر نمیتونه تو رو پیدا کنه؟ مانوس گفت باشه همین کارو میکنم و به داخل خمره رفت. پس از مدتی جادوگر با برادرش به خونه اومدن. به محض ورود به قصر بویی به مشامش خورد و از دختر خدمتکار پرسید زمانی که خونه نبودم آیا مرد و یا زن قریبه ای به اینجا اومده؟ دختر جواب داد نه. اما امروز صبح مردی از اینجا میگسش که گویا دنبال شما بود اون میگفت که میخواد شما رو بکشه جادوگر با خنده گفت گمان نکنم کسی این طرف ها وجود داشته باشه که بتونه این کار رو بکنه خدمتکار پرسید چرا جادوگر گفت اون درخت رو میبینی و با دست نشون داد دختر جواب داد بله میبینم وسط اون درخت بزرگ خرگوش هست که در شکم اون خرگوش مرغابی وجود داره و در شکم اون مرغابی تخم هست که اگه کسی بتونه اون تخم رو به دست بیاره و به پیشونی من بکوبه میتونه منو بکشه. آیا تو چنین کسی رو میشناسی؟ و با خنده دخترک رو ترک کرد. فردای آن روز جادوگر قصر رو ترک کرد و به مشرق زمین رفت. خدمتکار به سراغ مانوس رفت. اونو به داخل راه داد و غذای خوبی براش آورد. بعد گفت به محض اینکه غذا تموم شد اگه به حرفان گوش کنی ما موفق میشیم که با هم جادوگر رو بکشیم. مانوس گفت چطوری؟ دختر گفت من بهت میگم اون درختو میبینی بله دختر ادامه داد داخل درخت درست وسط اون خرگوشی وجود داره که در شکم اون یه مرغابی هست و مرغابی هم در شکم خودش یه تخم داره اگه تو بتونی اون تخم رو به دست بیاری و بر پیشانی جادوگر بکوبی همه چیز برای جادوگر تموم میشه و اون میمیره مانوس گفت اگه راهش اینه به شرافتم قسم میخورم که اون زیاد زنده نخواهد موند و ادامه داد آیا تبری چیزی داری که بتونم درخت و قطع کنم؟ دختر به اون یه تبر داد تبری که از طلا ساخته شده بود و می مانوس تبر رو برداشت و بیدرنگ به طرف درخت رفت و با ضربه ای اونو به زمین انداخت خرگوش به سرعت فرار کرد دختر فریاد زد هی hey, زود باش خرگوش رو بگیر وگرنه جادوگر هر دومونو میکشه مانوس اصلا نمیتونست خرگوشو خرگوش رو بگیر و در همین لحظه با فریادی گوش خراش گفت. کمک کمک رو تپه های پرگل. و لحظه ای بعد رو باه شانه به شانه خرگوش می دوید و تا اینکه اونو گرفت و با یک گاز بزرگ شکمش رو درید. در همین لحظه مرغابی از شکم خرگوش بیرون اومد و پرید. دختر گفت: اوه نه دیگه کارمون تموم شد. مانوس فریاد زد: کمک کمک شاهین صخره بادهای سرد. و لحظه ای بعد شاهینی بزرگ تو آسمون پیدا شد و به دنبال مرغابی رفت و مثل برق اونو تو هوا گرفت. مرغابی به محض گرفتار شدن تخم گذاشت. تخم معلق زنان رو به سرعت به طرف پایین رفت تا اینکه میان دریا افتاد و آرام در قعر دریا جا گرفت. دختر لرزید و گفت دیگه از این بدتر نمیشه. حالا باید با زندگی خداحافظی بکنیم. ولی مانوس با فریاد سمور رودخانه بزرگ رو صدا زد. هنوز هنجرش از فریادی که زده بود می لرزید که سمور بزرگ با یک تخم در دهان نزد اون اومد. دختر با خوشحالی فراوان گفت: عالی شد. بهتره هرچی زودتر به قصر بریم. وقتی که اونا به قصر رسیدن، دختر گفت: مانوس، به استبل برو و اسبی رو که اونجاست بیار. قبل از اینکه جادوگر به خونه بیاد، ما باید با اسب از این سرزمین سحر و جادو فرار کنیم. در اون صورت من همسر تو خواهم شد. آیا تو مایلی؟ مانوس با داد: با کمال میل حاضرم. ممکن نیست تو را از دست بدم و هرگز نیز از تو جدا نمیشم. دختر گفت: پس هر هرچه زودتر عجله کن و اسب و بیار وگرنه جادوگر از راه میرسه و همه چی به هم میخوره. مانوس با خوشحالی به طرف استبل رفت و اونجا چه چیزی دید؟ بله اسب کتولهی رو که فروخته بود. خوشحالیش دو چندان شد و گفت اوه oh, اسب کتولوی من این تو هستی که اینجایی ای، این باور کردنی نیست و بعد از کمی نوازش زین رو روی اسب انداخت و اونو از استبل بیرون آورد. مانوس سوار عصب شد و همسرش رو پشتش نشوند و همچنان که تخم مرغابی رو در دست داشت، تاخت. بادهای تند ماه مارس پشت سر آنها بود و اونا همچنان می تاختن. پس از اینکه صدها مایل دور شدن، مانوس لحظه ای به پشتش نگاه کرد و چه کسی را دید که به سرعت به سمتشون میاد؟ بله جادوگر رو، از همون جا دهان پر از کف جادوگر و سری را که دو شاخ بزرگ در آورده بود میدید همسرش گفت، اوه مانوس، جادوگر داره میاد، آیا نشانگیریت خوب هست؟ مانوس جواب داد، نشانگیریم خوبه، اما ممکنه تو بهتر باشه. همسرش گفت، دیگه وقتی نمونده، همینطور برو، و درست سر پیچ جاده دختر از اسب به روی چمنزار و بوته ها پرید. جادوگر همچنان نزدیک و نزدیکتر میشد و وقتی سر پیچ جاده رسید، دختر تخم مرغ رو به طرفش پرتاب کرد. سخم پس از اندکی چرخش در هوا درست وسط پیشانی جادوگر نشست. دختر نصف بدن جادوگر رو در مشرق و نصف دیگه رو در مغرب زمین انداخت و تمام وسایل جنگی اونو به اطراف پرتاب کرد. مانوس و همسرش سوار بر اسب با یک جهش بلند از 21 تپه بزرگ پریدند و با پرشی دیدنی و تماشایی از 12 در عبور کردند و خیلی زودتر از آنچه که فکرش را می به خانه رسیدند. وقتی که رسیدند چشم‌های مانوس برق زد چون قصرش دوباره مانند قبل همونجا بود و آسیاب زیباش مصر گذشته به محض ورود او شروع به چرخیدن کرد مانوس دیگه به هیچ قیمتی هی حاضر به فروختن اسب کوچولوی نازنینش نشد و هر روز یه دسته بزرگ گندم طلایی پاک شده برای اون میبرد تا نوش جان کنه مانوس و همسر و مادرش سال‌های سال به خوبی و خوشی زندگی کردند پایان کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلاش مهران دوستی تی ای دی نشانی وبلاگ ما m e h r a n d o u s com مهران دوستی.dot.blogfa.dot.com